اطلاعیه توجه به اتصال شبکه بانکی کشور به این یارو سویفت چیه همون و همچنین برداشته شدن تحریم ها و احتمال ورود شرکت های جاسوسی خارجی از همه اعضای دیوار نبرد پایگاه دعوت به عمل میآید تا در اسرع وقت در جلسه اضطراری هیئت مدیره پایگاه دیوارنوردان متعهد پس شرکت نماید دستور جلسه انتخاب بهترین سفارت یا سازمان برای حمله و اشغال انتخاب بهترین شعارها علیه مقامات دولتی داخلی و خارجی و توضیح غنیمت ها و کمک از های عملات قبلی به سفارت انگلیس و عربستان لطفاً در هنگام مراجعه کفش دیوارنوردی و باقی لوازم حمله یادتون نره حیت مدیره پایگاه دیوارنوردان متحده دل و کل کشور